دو یکیش بود که عباس های بود عباس علمداری علمدار اسم جویس باز در آذربایجان، علمداری یعنی اهل اون علمدار یه جاهایت که آدم فکر نمی کنه اسم جا باشیم مثلا خوستوشایی صدقه طالشه نیدیم خوستوشا اسم امامزاده است در آذربایجان، و خوستوشایی ها اهل اون جا بود علمدار هم مثلا عباس علمداری از خانواده خیلی بوده. پدرش مدیکل بود تو وزد دارایی و نمیدنم چوهر خوهرش تا استاد دانش که دو بود خانواده خیلی معترم ولی تب عباس آقا به لاچی بود تو دم دست خان کار بود بعد یه روز حالا ها داریم با این عباس آقا و با کسرو نه یه روز قصده آمد و گفت که عباس آقا بچه دار شده که سردار شد اگه بزر ترهنگم کار ولی خب میل لا تو اگه چیز داری های گلت میخواد یک تلفون میشه بکن تو مردی دارم میخواد من دوستش دارم با کماله می گو یا خانم از وقت که آبستم بود و تنوز نزاهیده بود رفت ناراحتی پیده میکنه و یه خون ریزی مختصری پیده میکنه و میره تو رو خلاصه جلوگیری میکنه و بچه به دنیا میدارم بچه رو فقد نمیدارم بعد ما زنگ دادیم عباس آقا سلام فلاق احوال شما فلان گفتم حال خوبه و خانم خوبه گفتم که تو قدم نورسیده مبارک سلامت بشین گفتم ولیت چطوره ولیت می‌دهن که خب ولیت نمید ولیت چطوره گفتت شما شمای می‌بود سینه خوب خب حالش خوبه مقصه کونیزی گفت ولیت ربطنی بود آقا با اسکناس بخشی گرفت گفت ولیت ربطنی بود <تص> با اسکناس بخشی گرفت هههه حالا، الحمدلله، ولیت، چون دیر نبود و اسکناس هم لازم نداشت و بله، <موع> مثل بول بول، <سؤال> مثل اومد بعد از زول برو ببینید که امتحان چه وقتی خبرش، حتما زرن دیگه اون دپارتمان منم میم که بعد از زول بینم که، <بای> خب، تا کجا خونده بودیم؟ مثل این که... ها، ازاره... این هدیه ها این <تصالح> <تصالح 166 تا کجا؟ 166 خب ها کی میخونه؟ بخون نه من شادمانم، نه فرزند من یه داری خون، از 1600. یعنی چه مطلب درستم؟ 1600 هم ده. به فرجام یک سر به بود. مرگ در تن چون در جهان متمرکز؟ باشه. کی چون در؟ چون تنگ در جهان جای دای نیست جانی خون چارستون چارستون چارستون مرا فر نیکی دهش یار بود خردمندی و به بیدار بود بدان بدان سان بدان ساختم سرش را به پروین طرف کنون اندر هم به کار آورم به کار آورم آور آورم بروبر فراوان نگار آورم چه خرم شود جای آراسته حدی آید از هر سوی خویی از هر سوی, سوی خاسته نباید مرا شاد بودن بسی نشیند نشیند نشیند, نشیند. بر آن جای دیگر کسی دیگرت نه من شاد نه فرزند من نه فرمای کرد نه هیبند من نباشد مرا زندگانی دراز سکا پوز ایوان شوم بینیاز شود تخت من گاه افراسیاب کند بیگونه مرگ بر من چطاب چونین از رای سفهر بلند جهی شاد دارد جهی مست من مست من مست من بدو گفت تیران که ای سر فراست نکن خیلی اندیشه یز دراز که افراسیاب از بدی دل بشست زشادی بکین پاسفن گش سوس. مرا نیست تا جان بابد در تنم بگوشم که پیمان تو نشکنم دار نمانم که بادی به تو بگذرد گر موی بر تو هوا بشمرد به بدو گفت که ای نیک نام نبینم جز از نامی که همه راز من آشکارای توست که بیدار دل بازی و تندرست من آگاهی از فر یزدان دهم هم از راز چرخ بلند آگه هم بگویم تو را بودنی ها درست از ایوان و کاخ اندر آیم بدان تا نگویی چه چب... بینی جهان, جهان چه بینی جهان که این بر چرا شد نهان تو ای گرد پیران بسیار گوش بدین گفته ها فهم بکشای گوش فراهان بدین نگذرد روزگار که بیکام دیدار پیدار دل شهریار شو زار کشته ابر کسی دیگر را این تاجگاه تو پیمان همی داری و رای راست ولیکن فلک را جز این هست که گفتار بدگوی و از وقت بد چنین این بیگنات بر تنم بد رسد براشوب برا ایران و سوران به هم ز کینه شود زندگانی دو جمع پر از رنگ گرد از زمین زمانه شود پر ز شمشیر کین بسی صرف و دو و سیاه و بنفش از ایران, و توران از ایران, به, از ایران به توران ببینی درش بسی خورت و بردن خواسته ترا... تراکندن جنج آراسته بزا کشورا کن به پای سطور بکوبند و گردد به جوی آب شور یا آب شور آه. هر دوش درست توران ذکردار خیش پشیمان شود همز گفتار خیش پشیمانی آنگه ندارد سود که برقی از بوم آباد دود از ایران و توران برای خروش جهانی زخون من آید به جوش جهاندار برچه چونین نبشت به فرمان او بردهد هرچه کشت بیا تا به شادی دهیم و خوریم چو گاهد گذشتن بود، بگذارید چه بندی دلن در سرای سرای سپنج چه یاری به رنج و چه یازی به رنج چه, چه نازی به گنج که از رنج دیگر کسی ببکرد جهاندار دشمن چرا پر برد چوبش نید پیران و اندیش نید؟ بست هستم جده، آره اصلا که توجه کردید، من اول به شما گفتن که <تصفح> یاوشی، در بعضی نوشته های ما جز اولیه های خدا میگونستم یعنی میگونستن ولی مثل پیران تصرف بکنید و این توصیفی هم که ازش میکنن که این می بیگونه آهوده کریتما داشته جوانی خیش داشته نجیب بوده طبیعت بشته فرق عیزدی هم داشته و از راز چرخ بلند آگاه اما در این حال این است که از بزرگان پرسیدن سعدی میگه که یکی از یعقوب یعقوب پیغمبر پرسید که تو وقتی که پیراهن یوسف و از مصر را بردن بوشو شنیدی تو خونت نشته بودی گفتی بوی پیراهن یوسف میاد چرا اونجا که تو چای انداخت بودنش نزیدیش اونجا ده غتمیت بچه را انداخت تو چا؟ اونجا نهیدیش یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای روشن روان من. بوی پیراهن شنیدی. چرا در چاکن؟ آنش ندیدی؟ بگو احوال ما برق جهان هم. دمی پیدا و دیگر دم نهان هست گهی بر خارم و اعلان تا پیش پای خود در دید. یه وقت جنبه بشری برد میگشتن یه آدمی بودن مثل من و شما گاهی سلاح خود شما تشریف میدهدن گاهی هم که مدد قیبی اینطوری که میگم بهشون میرسیده اون وقت می میدهدن همین با این مسائلی که من چنینم چنانم اینطور میشه اینطور میشه منو بیگنام میکشن من فلا هم میکنم بعد دشمن میشن مردم ایران نمیاد میاد میشه ازش تو خب تو که این هر میدونی؟ تو چه تو روستم باشتی بره؟ وقتی روستم رفت که همه اینا بعد تو نزشتی بیاد هم نگفته که نه حرفان تو باید باشم یا باقی مسائل دیگه یکی گفتن به که آه یه روگانه رو آزاد کن جنگم میخوان جنگ کن به تو که مربوط نیست پادشاه یکیس دیگه است میگه جنگ کن چرا نکردی؟ جواب هم که گفتم برای این ایراد به ذهن توان نرسه که فکر بکنید آدمی به این روخ فنبینی پس چطور شده که اونجا عقلش نرسید این جوابش از پیش داده شد اونجایی که گفتم بخونه مطلبش همین بود که میگه که من اینجا رو می‌سازم، درست می‌کنم، فلان می‌کنم اما من از این وحر وزاری نمی‌کنم زندگی من دراز نیست، نه اونجا من می‌شینم نه فرزند من، نه کسی دیگه از پیوند من یک پسر دیگه داشته این که من پرس دیدم دختاری پیران شایدم، بعد درست کردن این از برسخواه نوشته دیگه، خودش که نکرده یک پسر دیگه ای از من فروت، پسر سیاه باشه و, و میگه که یعنی. کیخوس رو سپاهی به فرماندهی توست می‌ترسته دیگه که بریم پلند ولی از راه کلات نرینا. اینا دیگه نمیگه چرا، نه. توست میگه اون رو نزید کرد سر قلعه فروت میاد بالا اونه سپاه ایرانی هزم میکنه خوشش میاد بحبه من فلان چی؟ میاد بالا که ببینه و اونها می‌بینن که اینجا یه قلعه است برین کسی رو ببینین و چی کنین توست دیوانه میگه بری این پسر دستی میگه حالا این اومده به استغال و فلان و اینا و پسر سیاوش برادر شاخ برادر خسرو در سرتون ندن جنگ که فرودن کشته میشه بنابراین میگه که نه من از این بهره میبرم نه خیش من، نه پیوند من، هیچ کس من چیزی نمیشه داستان و فرود مفصل در شاهنامه اتراجعی هست مثل حال خود سیاوش این هست که اینا که میگه اینا همه مطالبی هست که بعد توی داستان و توی داستان دیگه شامان من همه این اتفاق میفته. میگه تو خورم شد جای آراسته پدیدار هر سوی خواسته نباید مرا شاد بودن بسی نشینت بران جای دیگر کسی نه من شاهمانم نه فرزند من نه پرمای گردیز پیوند من که اشاره به همون خروفه نباشد برا زندگانی دراز به کاخوز ایوان شد هم بینیاد شبه تخت من گاه هست گاه, گاه هم افراسی هست بلان تو نیه اترایی تو پهره بعد پیران میگه تو چیز میکنی تو بی که فکر, فکر بد چرا میکنی چرا فکر, فکر بی خودی میکنی نالاحت نباش اینجا کسی بدخواه نیست افراسیاب خیلی با تو مهربانه دلش از دینه شسته من به تو پیمان میکنم که اگه سرم بره جز محبت تو نکنم میگه همین نکتون می درسته ولی من بی گناه به گفت بدخواه و بعد بد بعد پشته میشم و این هم راز چرخ بلنده این سرنشت میکنید تو هم به من محبت داری درست میکید ولی کاری نمتونی و من اینا رو به تو میگم درست گوشت رو باز کن برای اینکه بعد نگی که چطور که این سیاوش تنهان بود اینا رو نگفت تمام سرنشت خودش رو پیش بینید به دو گفت که تایی سر فراز مکن خیر اندیشه دل دراز که افراسی هاو از بدی دل بشست به شادی بکین خواستن گهش توست این ماله افراسی هاو من را نیز تا جانبود در سنن بخوشم که فیمایت تو نشکنن نمانم که بایدی به تو بگذرد وگر موی بر تو هوا بشمارد بایدی که من هوا بزنی یه دون سر موی تو رو تکن بده و نمیزدم نمیزدم که اینطور بشه موی تو رو باد به هم نزنی. سیاوهش میگونم قبول دارم سیاوهش بدو گفت که نیکنام نبینم جز از نیکنامیت کام همه راز من آشکارهای تو تو میداردل باییو تند روش من آگاهی از فره از دانده هم هم از راز شرخ بلند آگه هم بگویم تو را بودنی ها درست از ایوان و آیم آیام نخست به تا نگویی تو بینی جهان که این برسی چه روش شد نهان توی گرد پیانه به بدین گفته ها بدین گف گوشت رو پان به یعنی خوب گوش الان میگیم خوب گوش تو واقع گوشت رو باید نمیشه پان میگیم ولی محصولیه که دقیقت رو نمیشه بدین گفته ها پن با گوشهای گوش پراوان بدین نکدارد بزگار که بیکام بیداردل شهریار شاید هم مرادش افراسی ها بمیگه بدون نظر اون شبه هم زار کشته ها بر بیگناه کسی دیگر آرائرین تاج کار تو پیمان همی داری و رای را میگه من متوینم تو درست میگی، دروغ هم نمیگی بلکه که این فلک را جز این هست، خواست گفتار بد بود یا از بخت بد چون این بی گنه بر تنم بد بر آشوبت دیر، بعدم که بعد اواقل و بعدم خیلی داره. بر آشوبت ایران اطولان به هم، که شود زندگانی دو جمع، پر از غنج گرده از زمین، زمانه شود پرز شمشی کیم بسی سرخ و و سیاه و نفش از ایران به توران روی پسی خارت و بردن خواسته براکندن گنج آراسته بسا کشور ها این الف رو بهش میگن الف تعظیم الف تعظیم یعنی چه بسیار کشور ها تو چار مقاله داره بزرگا مردا که بو علی بود علی سنور علی فتحی بزرگوار مرد آهو علی بسا چشورا کان به پای سطور بفوبند و گردد به توی آب شو یا آبش آبش شور مال جای خراب آبادی پل آب شیرین آبش شورو هیچ وقت اصلا مگس هم طرفش نیست چیزی داره که هیچ دیدی که سعدی دویتی داره تو پولستونش هیچ دیدی که مثلا مردم و پیبون و فلان و اینا بر لب آبشور آب گردایم هر کجا چشمی و باید شیرین مردم و مرغ و مور گردایم باید که آبشور تو دو میره یعنی خراب میشه خراب میشه سپهدار توران زکردارخیش پشیمان شود همزه گفتارخش ولی وقتی پشیمان شدید پشیمانی فایده نداره پشیمانه هنگه ندارد سو که برقی از بوم آباد دود این تفصیل انتقام جویی رو هم در شاهنامه چند جا شرق دادن یکیش در همین مسئله سیاهش که روستن میاد در از این در تونان سنگ رو سنگ نمیداره برد. پسر افراسیاب رو سرخه میسن که سرشون میگه هر کشون گه من یک گنام در این کار که هیچ اصلا به شدت ناراحت و من سیاباشو دوست داشتم بسیم تخبه سرشون گرد و هفت سال اونجا پادشاهی میکنه رستم و بناه پادشاهش برینیمونده که هر کشون اونجا هست خراب. اگر بگید این غیر انسانی و زشته و بده و اینا جواب میناست که در اون روز دوران های ابتدایی این مسئله که این آیین‌ها خیلی مسئله فوق مهمی بوده. یه مطلب خیلی کوچیکی یعنی یه درگیری خیلی کوچیکی بین افراد دو تا قبیله یه وقت موجب می‌شد تمام اینو ریزانم دیگه بپوشه. خب اینطوری وحشیانه است اما خب می‌ترا یه قصه ای هست که یه که مردم یک ده سری قاحت عسل همشون گشت. جسایو میبره رو ست بکنه اومد دیدش که یه جای زنبور بوده و لونه هست، اصل، از تو کوه سرازیرا شده بود. فکر خوب ما بود زحمت به دست اونها در الحمدلله میره و زنی رو خور میکنه و میبره در بقالیچه و هم راسو داشته راسو رو تو... بفا... عوام بهش میگن موش نمیدونم تیرش چه نه یه حیوانیست باریکه و بلند این دستباش خیلی با هم فاصله داره مثل که با چوب درستش کردن باریکه و بلند و بسیار فرس یعنی مثل برد حرکت میکنی خیلی زودم اهلی میشه یعنی با آدم اون میگیره و دشمن بزرگ ماره یعنی عمون نمیده به مارا ماره به اون جلادی و به اون پرزی رو تیکیت کش می کنه خیلی و در هندوستان نه اغلب دیگه هم دارن برای همین مقابله با مار تو خونه ها ولی گوشت خیلی ماهی رو مرمونم چی تو اینا هرچی بیشوید می خورید بعد می که چیز کنو اصل رو معامله فلان اینا بقاله هم به راسو داشت سیاد هم سگ داری که هم باشید طوله هستی، سگ بیقن اصل رو خود زنید اومد اصل بخوره سگ سیاد فرید راسو رو کشت آسو که کشت بقاله هم زد سگ کشت سیاد هم زد مثلا سخت زد دست, دست بغره مثلا انداخت یا پیش داد کشید دا ای مردم بیانی این منو کشت نارید. این خانوصایادو کشتن و بعد قبیله صیاد هاشون اومدن ریختن هزار نفر کشته شدن سر این مطلب البته توی مرزبان نامه هست نظر دست اثبات نامه درست یادم نمیاد رو کنیم داستان به هر حال روش زندگی بوده حالا بعدو خوبش و من کار ندارم اولا دومی که ما خیلی از اون وقت طرف یه دوستی نکردیم ببینین عراقیات کوپچو کردن بعدن ببین که لشکر امریکایی اومدن با خود چیکار کردن و با اعراق کرد؟ درست در روزه داره ما هست در روزه که اینا هم خوب می هستن که یه دونه موش یا یه دونه نمی هم حیوان یفته توی ده بچه گربه یفته این دوله بخاری یه دفعه بستیچ میشن و نمی آتش نشانی و رسکی و توی هم از که توی هم این آقای جناب آقای بچه گربه از توان دودکش بره چنشونو گور پدرش شما هزار تا هزار تا آدم نفوس زکیه بشری رو با بم بریزین میکشین پدر سوخته ها بعد اون وقت میمیدارن مثلا میان این حیبون های که سر خاچوب و اینا خالی کنن یه راست مثلا تله میدارن میفتم تو یه حیبونه بگندوی هست اسکن میگن چی میگن آره. این مثلا میگفتش که دوست میادادیم خونهش قله جنگلیه که از این هیونا میان شب از سطح خاطرش خالی میکنن به هم می‌زنن داغ می‌کنن خرابش می‌کونن طالع ریزه طالع گذشته بود من یه دونه از این سکنه افتاد رو طالع دیگه هم میده دیگه بعدم نمیشه که اینو بر چیز کنم از گل بالاتر نواد بشه تلفن کرده به همین چی سمت هیوانتونه که ببینیم ببریم اومدند بحث این گوگم میده گفتم ما جلو نفته خودت بعضی یه توری چیز کنی چیتاها کنم ها؟ گفته باید بری پلاسپیک از بالا بند پایین روی این کله <تصفيق> باید ببرین رو بریش کنم سن. آره من نمیگه کار بدیه ولی آخه از اون طرف نمیشه اون بود از این طرف این اون آدمه به با همین بابا بگی که خب مثلا فرض کن که تو حالا داری روزی یک کیلو گوشت بیخری بخوره فکر می‌کنی که بیتر نیستی یکی رو گوشت و پولش رو یه دولار بفرسی بانگلدش. ده نفر هدم سیشنگ میگه نه یا چطور؟ یا روی که سکمال من اون با آمار بسید این تمدنه امروزم این جامعه این چهار دوشترین می زنگی میکنیم گرفته که چه چه علمی، چه دامشی، چه تکنولوژی انظر انسونیت نید زنی که به دوست من گفته که من مثلا شیش ما دیگه میخوام این شوهرم خلاف گفته بهش که خانم شما تو با هم خوبیم که منش نیدن شما گردگیرش دوشین گردگیرش دوشین گفت نه من نمیخوام شو بخوانهای سواشم منطقهان این قرار منو ببره اروپا آخری مساخه ندم باش اروپا رو ب و برگشتن تا طلاق می. شافک کن هیچ زن یونیم ممکنه این به ذهنش برستین بعد باش باش بهزاه تو داد و فریاد و, و مرفه یا جدا میشه یاد. جد. اگر هم خوبی میششه تم که زندگی اصلا نقشه بکشید این نگه داره که این اول ببره بعدم لحظه که میخوان از جدان اول مثلاگه حساب چ دان زنی که میره ع تو به جدید کارد اگه در باید میره هرچی میتونه میره میخواه <تصفيق> به محض که فهمید زنی که میخواهد اول کاری که میکنیم تمام این رو باطل میکنیم آه این که زندی آدنیزاد بابا بعد یه موش میافته تو تعلیم یا تا از گفتم که خود بدونیم این که اینو شما این حالا این چیزها خیلی شاید به نظرتون نه یاد ولی حتید اینه باید نیگه که همین دوسته ساخنه من میگه من ماشین خریدم برای یه مبکه من باشه اسمان کارید من ماشین هرش پرد این که هست شده منه یه رو رخته رختم به پولیس میگم آقا این قباله چید ماشین من هم شد خوش منی مسعود دوام آتیش. ای بیاری آخری آروم بگیره با دارم چه توش تو چی باید براتیم کریس با بگذار نه شرط داشت ارث که میگه که خداوند اینجور گفته جهاندار بچخونی نویش به فرمان او برده حد هر چیزی که بشه یعنی میوه در جوخاش در دوزاد فرمان او میوه میده چه بندی بعدا دیگه ولشون دیگه همین ادیشو کن چه بندی دلن در صحایف 5 این عرفان فردوسیان هست فردوسیان فریبی متوجهی چه آقا آقا زندگی این دنیا کوتاهه این پدر بازی رو نکنید هیچ معلوم نیست این کلهایی که تو داری از این من رو از اون من داری این, من این سر اون داری و اونو فلا میخونیم پا تو روی اسکلت وام ها با بالا هیچ معلوم نیست این پولو بتونید بخورید چه بندی دلن در سراغ استفن. چه یازی برنج و چه نازی چرا خودت این همه زمتید؟ چی به پولت میناسید؟ این اول میتونی این پولو بخورید و خدا یه خسطت و لعامتی به تو میده که جرعتی که یه زند داشتی درست زنی نداشتی. بذاری تا برچت برین و حیرامی بکشه حل بسید. کزان رنج دیگر کسی برخورد. جهاندار دشمن جا آفرد. بگید. استاد این سه فنج نه؟ یعنی سه روز یا فنگ روز. خیلی مشکل بود. آره. وقتیسی مستمند. مستی یعنی بعد دفتی و بیچاری توی اون رودکی ای آن که قم گرید و سزاوه ها در نهان سرش همین باقی رفت آن که رفت آمد آن که آمد, آن که, آمد بود آن که بود که چه قم داری میگه مستی مکن که نش مستی زاغی مکن که نش اون زاغی شو تا قیامت آقیت کن که این دفت راق زاغی با باید بگوید تو بشنید پیران اندیشه کرد به گفتار او شد دلش فرز در به دل گفت که از من بد آمد زبان گرو راست روی از همین سخون توجه میکنی؟ پیران میگه اگه راست بگه در حریفت مخصر من تو میدونم راست میگم میتونه که این گفتی که من از راد چرخ بلند آبا هم می‌دونه که راست می‌که پیران ناراحت می‌شه که من کشیدن او را من کشیدم به توران زمین پراکندم اندر جهان و دخم که او را به توران کشیدم در رنج. به رنج تخوردم به گروه کشفر و تاج و گنج همه باد گفتار شاه شما می‌دام، همه باد گفتار شاه بعد وقت هفراسیان گفت که این بچه دشمنه، حالا البته نگفت اونجا که حالا گیرم من باش دوست بشم این مردم که اینجا اصلا چشم هر داره. میری تو آلمان پول رو خرج کنی پول از بیرون آوردی. بردی بدی آقایون بخورم اینجا خارجی کسی ایست و اینجا چکا دید؟ اینسان ما مردم همه باد گفتار شاه چنین هم همین گفت با من پیغا میگه صبی فریدم صبا باز همین وزان پس چنین گفت با دل به مه که از جنبش که از جنبش او رسم گردان صبه چه داند به این رازها را گشاد همان که ایرانش آمد بیا ترجمه می‌کنید اینجا آدم دیگر به دل فس بعد نمیاره دیگه من رفیقم و تیر که از من پشته بودن تا 20 سال، تا 25 و سال من خواب دیدم که این تیراب به این نخورد و حالا خیلی ضعیف و آوردنش تو خونه و مادرش دنه مقدسه ای بود، مسجد میرفته اینا بعد من دارم تو خواب دعوان میکنم با مادری که خانوم حالا چند روز این مسجد ولش کنم، این بچه رو پرستاری کنم، حالش جاویه چیز قبول نمی این کنسه اینه که یا مثلا پول بیره کسی که شیش نپوشیده دست میکنه این اون تو هست من نمیخواد قبول کنید که پورو گم کرده میگه بعد از این که این فکر رو چپ ایران بعد حالا پیس چه شایدم این نوستالیزه یاد ایران اومده این هر میزنه یعنی میخواد اوی خودش نیاره که نمیخواد فکر کنه که این راست برش مشکله که فکر کنه این راسته اینی که میگه که پس چنین گفت بادل به مهر برای اینکه بچه رو دوست داشت که از جنبش و رسم گردم سپه چه داند به این رازها رو گوشه از کجا معلومه که این حقیقتا راز گیتی رو بدونه همانا که ایرانش آمد بیا همانا هو مانا هو یعنی خوب و نیک مانا هم از مصدر مانستن یعنی خوب مثل این است که نیک مثل این است که کاملا این طور است که اومانا، یعنی نیک ماننده در حیده پیران نمیدونمی که بلن که بعد یه سرانه میبورن فلا پیران ناراحت بود دارش نمیخواست اینجور باشه بیگه انشاءالله که میگه خود یاد ایران افتاده حالا راحت شد بله خب بعدم اتفاق میافته گفتم که بعد به کابوس و از تخت شاهنشهی به یاد آمدش روزگار مهی دلخیش از آن گفته پرسند کرد نه آهنگ رای خردمند بیگه انشاءالله یاد ایران افتاده این افتاده همه راه از این گونه بود گفت گوی دل از بودنی ها پر از جستجو. دون از پشت اسفان فرود آمدند به گفتار بیکار دم بردند گفتار بیکار یا بیگار یعنی گفتار بی بوده یکی خانه زبرین بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند به بودند یک هفتزین گونشات به شاهان گیتی گرفتند یا به هشتم یکی نام آمد به شاه به نزدیک سالار سورانتفاق آنجا برو تا به دریای چین سپاهی به جنگآوران آوران برگذیم همی رو چنین تا سر مرز هند آنجا گذر کن به دریای سند همه باج کشور سراسر بخواه بگستر به مرز قذردر سپاه برام از فروش از در فخدوان ز کوس و تبیره زمین شد نوان به هر سو سپاه انجمن شد برو. یکی لشکری گشنه و جود که آمد به درگاه پیران سپاه همین رفت از آنسو که فرمون به نزد سیاهوش بطی خواسته به دینا رو از پان آراسته آراسته آراسته به هنگام کردند. کردن بمان سپرمان برفت و سپه را فران با. به این ترتیب پیرانم از جدا تدام شد سیاهوش بکشن پیران بود نمیذاشت دیگه با دست نگردن تمام ایران و توران پرپیت نمیشه این فایی نمیشه نمیش. نامه که برو تا چین و اونجا مالیات جمع کنو. برو به هند و مرد هند یعنی سرزمینه از اونجا برو به سند و تا خضر و پیران هم سپار جمع کرده و رفت و مال و چیز زیادی هم گذاشت پر به این باز یکی از کسانی که ممکن بود که جلو این کارو بگیره اصلا تراجیدی هم چند تا یکی که از صحنه خارج شد طوری که تنها راهی که باقی مونده برای قهرمان میتونه بره طرف ما این صحنه یادش میاد ولی وقتی اونجا دیدم شال دیگه است که خیره دیدی وقتی شما داشتن پرسیدن که پیران کجای که اینقدی با من اعتراف نمیدن نه خب این چیزی که نادرید یه سآل خواهد گشت اصلا یعنی نر, نر. یعنی بحل میدوند که حیوانات مثل انسان نیستن که همیشه آمادگی جنسی داشته باشن حیوانی فصل معینی یعنی طبیعت این گفه رو در فصل معینی که وقت تولید مثل آبستان شدن شدنشه تحریک میکنه و اینا در اون فصل میتونن بچه دار بشند او رو نرشون رو نمیگن ولی اصلا معنی قوی و مردان گردن کلو خود این ها اصلا که نزدیک افراسی ها آتش بیامد به هنگام خواب یکی نامه سوی سیاهوش به مرد نبشته فکردار روشنطفه که دا تو برفتی نیم شادنان از اندیشه بیدم نیم یکدم نیم یعنی نیستم نیم. نیستم شو نیم, نیم؟ علی کن من در خور را. رای کن کن تو به بجستم همین جای تو گر آنجا که بودی خوش و خورم است چنان چون بیای دل استی غم است بهدان پادشاهی کنون باز کرد سر پتگال اندر آور به سیاوش سپه بر و برفت رفت سو که فرمود سالار خدا رفت و گنجستران بار کرد چهل را همه بار دینار بار دینار مار دینار مار دینار, بار دینار. بار دینار هزار اشتور ماده سو ماده ماده سو سو ماده یعنی متیریال ماده یعنی مازن پشت نیست فارسی هست ماده عربیه ا سورف موی بونه بر نهاد هشون تلفظ نمیشه کنه برنهادن, برنهادن بارنگ و بود از ایران و توران کذیده سوار برفتند شمشی زن ته به پیش استفاهم درون خواسته اماری اماری و, و... و خوبان آراسته دیاغوت و پیروزه شاخوار چه از تو و تاج و چه از با. چه انبر چه اود و چه مچ عبیر، چه دینا و دیباو. چه دیبا و چه تقهای حریر زه مصری و از چینی و پارسی همین رفت با او چه سی نهادن سر سوی خورنبهار سفهدار و آن لشگر نامدار چون آمد بدان شارستان شارستان شارستان دست یافت دست یافت دست یافتن این دیاز کرد یادیدن دو فرسنگ بالو پهنا بساخت از ایوان و میدان و کاخ بلند، ز و از گلشن از جمن، بیا راست شهری به سان بهشت، به هامون گل و سنبول و لالکشت. برای ایوان نگاری چندی نگار، ز شاهان و از بزن و از کارزار، نگار سر و تاج کابوس شا، نوشتند با یاره و گرز و گاه. برای تخت او رستم تن، همان زال و گودرز و آن انجمن، دیگر سو افراسیاب و سپاک چو پیران و کرتیب از ایران و سوران شدن شارستان میان بزرگان یکی داستان به هر گوشه ای گنبدی ساخته ساخته، سرش را به عبر اندر افراخته نشسته سرای اندرامشگران سرن در سرای سران سرن در ستاره سرای سران یعنی خونه های بزرگان سرش به ستاره نه ومیرودم نه فهم میگه بگیم نه چاد ساون نگه بگم نیکنم سرنده در تاره، سرهای سرها بخونم واقع بگو سیاوخش، سیاوخش، گرتش نهادن، نام اسمش هر سیاوخش گرد، سیاوخش گرد، گرت همون، چربه یعنی، سیاوخش کرب، سیاوخش مجرد سا برو گرد، برو گرد، برو ویرو کرده ویرو اسم برادر 20 در داستان ۲۰۰۰ ویرو گرد ورو گرد ورو گرد از اینا خیلی هم و این همو کرده دیگه سیاوش یعنی سیاوش اینجا رو ساخت بخ سیاوش گردش نهادن نام جهانی از آن شادمان شو پیران بیامد به زکین، دفعان رفت از آن شهر با شهر با آفرین خنیده شده نام آن شاهزاد و آن شارستان هر کسی کرد یاد خنیده به توران سیاه کرد که گرد که زختر شد روز عرض شو پیران از آن نام پر شارستان شنید از لب هر کسی داستان از ایوان, از ایوان و و ز پالیز و با، ز کوح ز دشت و ز رود ز آمدش تا ببیند فشاه چه کردن در آن نام بر جایگاه هران کس که او از در کار بود به دانگون با او سزاوار بود هزار از قردن مردان گرد چه هنگام هنگامه رفتن آمد چه هنگامه رفتن آمد برد. چون آمد نزدیک آن جایگاه سیاهوش تذیده شدش پاسطا تو پیران به نزد سیاهوش بسید پیاده شد از دور که او را بدید که او را بدید سیاهوش فرود آمد از نیل رنگ مرو را که آهوش بگرفت تنگ بگشتن بگشتن هر دو به شارستان که بود پیش از آن سر به سر شارستان ها. سراسر همه کاف و میدان و باق همیتا هر سو تو روشنچرا سبختا پیران به هر سو برا براند بسی آفرین بر سیاهوش بخاند به دو گفت اگر فر و مرزه کیان نبودید نبود با دانشان در میان تیاغاز کردی به گونه جای کجا آمدید جای از اینسان این پای به مانا تا راست میان دلیران و گردن کشان پسر بر پسر همچنین شاد باز و شاد باز جهاندار و کیروز و فررخمجار حسن چیزی نداره اینجا اول افراسیاب میگه که من دلم هوایی رو کرده دلم سر تنگ شده نامه مهرامیست بعدم میگه که ولی هر خود دلت میخواد اگر اونجا خوشی دارید جایی که هستی دورایی خیلی خوب باش اگرم میخوای بیا هر دلت میخواید بکن گران جا که بودی خوش چون خرم به چونانچون بباید دلت بیخم هست بدان پادشایی کنون بازگرد ساره بعد سگالیدن دارا میگه هرکه میخوای بکن با... باید برو اونجا بعد سگالیدن یعنیست؟ بعد نه بعد اندیش سگالیدن معنی فکر کردن بیشترم معنی توطعه و فکر بد میده امید. گاهی معنی خود ف خوب نیست یا باش رفت و ازتر و اشتر و باز, باز اینجا انبال و چیزای اشراف و چیزایی که اینا داشتن به عنوان ثروت و اینا قابل ملاحظه شون چی ها بودید هزار اشتر مادهی سرخمون بونه برنهادن صد ازتر زگنج درن بار کرد چل تا بینار بار کرد بعد ده هزار سوار از ایران رو برد اماری و خوبان و یاهود و بیروزه و توغ و تاج و گوشوار و عبیر و انبر و مشک و دیواغ و سخته های و مصری و چینی و فارسی و سی تا همه اومدن اونجا و بعد شهر بسیار قشنگی ساخت میدان ساخت و کاخ ساخت و ایمان ساخت و کالیس یعنی باق و اینا ساخت و همه دوازه می شهر شهری دوست که بسیار بسیار قشنگ بعد یکی از سی داره که بعضاستش مایه می همینه اون نیست که از قدیم محسوم بوده که تسکیر بزرگان اینا رو در کارکان نخاشی می‌کردن پس که به دلیل بستگیری که طبعاً با ایران داشته میده در که آقاش تسکیر و تو تخت و پلو سستم و پهلوانان دیگه و در او رو از یک بر از سرات دیگه در اتاسی‌ها بود سپاهش و پیندان و گستی و از اینا رو می‌دهد و خیلی خیلی ظاهران نه قشنگ دوست دوته به طوری که دیدنی میشه و حواکنده میشه در همه دوران که چه شخصی صافتن چقدر چه حد قشنگ شدون چه ها و می میرفتن و میدیدن و میمدن و پیران هم بردگرد و میاد و میبین و استقبالش میره و میان و بالاخره می‌گردن و بعدا هم یکی میگه که اگه تو فرگی زدی نداشتی اگر که خواهد چهار ساده نفری هرگز نمیتونستی شهرین این قشنگ اینجور بست از اینجایی که همهش خارستان بوده اینجور درست کنی و امیدوارم که تا عبد اینجا بمونه و بعد هم چه که خسرو و از اینکه عقاسی ها مغلوب می کنند میاد اینجا یاد پدرش و یاد پدرش میاخته و عشقی میریزه اونجا و میریزه برهاد میگه همه جا رفتن و بعد هم اومدن به بب. ها از کنم که بعد تقریم قدیمی ایران ماه درش سی روز داشته و هر روزی یک اسم اسم ایزاب این اسما رو تو فرنگ فارسی میتونید کنید و شنبه شنبه یعنی هفته یه انصار بابدیه اصلاً به فرامه هم سیاره که میبینید که علم سانده یعنی روز فرشید، مانده یعنی روز ماه مثلا وینزده یعنی روز ونوز یومدارش هم در فرانسی هست یدی پنشمال میگنن یدی یعنی روز یوپیتر مثلا سادده یعنی روز زحل سادم یعنی زحل بعد چیز در فرانسی چاشم نمیم که مرکدی مرکدی یعنی روز مرکور پتاره به ستاره ها نسبت میده ولی در ایران هر روزه هر روزه ماه یه اسم داشته اسمی که از ای مثلا اول هر ماه ارمز روز بوده میگه سر سال نو هرمز فروضی یعنی اول فروضی نمیدونم مثلا فرض کن که روز سیزده تیر روز بوده روز 16 مهر روز بوده و امثال اینا مسجدش. و تی تا اسمش هست یکی هم روزه اردی به و این تا مدتی بعد از اسلام هم این روزها به همین صورت ده چند تا شم میشه که ده بعد دی به دین و دی به مهر چهار تا نمیسته دی داره به فاصله هفت روز اون وقت معلوم نیست که وقتی بگن دهی کدومه دیگه بعد اینکه به دین، یعنی روزی که فرداش این روزه، به مه، یعنی روزی که فرداش مه روزه. به این تعطیلی چهار فاصله آخر روزی که هفتم به این تعطیلی می شده اما شنبه یه شنبه و این اسمی استارگوی از اون طرف آمده بوده، تیم ایرانی کردن کردند. دوازده ماشین روزه بوده، میشد یکشش روز، پنج روزم بل میکردند. شنارته اسم داشته، عرضه مترفیت هم داشته، ولی روز روزه تاو زمان نمی اومده به اینا میگفتن وحیزک یا وحیجک یا خمسه مسترقه الان دارن دوستان میگن پنجه یعنی پنجه یا پنجه دزدیده یعنی پنجه روزی که اسمش جزء جزء ماه نمیاد پنجه پنجه دزدیده وحیزک هم اینجوری اونروزا دل می‌کردن روز, می روز شیشا نوروز رو می‌گرفتن. این دفعه هم و این دیف داشته شما که می‌دونید سال 365 روزو تقریباً رو به میشه. یعنی 5 365 روز 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه. یه خورده کمتر از 6 ساعت. ولی به هر حال واسه 365 روز درست می‌گیرن. سال اول 6 ساعت خوطاته سالی که گرفتن از سال حقیقه 6 ساعت خوطاته بعد از چهار سال یه روز خوطاته میشه درسته؟ یعنی اول فروادین میگیرم و حالی 29 اصفن بعد از ده سال بعد از چهل سال میشه درد درسته؟ بعد از چهار سال میشه 100 صدوزینه روز. یعنی چی؟ یعنی بیستم آزر میشه اول فروادین هنوزه مثل نهیمه و الان زرداشتی ها یه نوروز سنتی دارن که همون تو آزرما دلیلش هم اینه که برای این نصف سیدانشه در دوره ساسانی قرار داشته بودن که کبیسه کنن کبیسه میدونید که الان هم همینطوره در ایران مثلا تقنیم ایرانه میگم چه ها سه سال اسفندش 29 روزه میدونید که ششمه اول سال درسته میشه 186 روز 6 ماه دفعه هم پنج ماش. سی روزه میشه روز یکی هم دیتون روز میشه 365 درست؟ روز. هر چهار سال یه بار اسپنگ میشه سی روز یعنی میشه 366 روز برای اینکه اون روز, روز چیز میشه ولی الان شما روز ساعتتون تقریم در میرد بیرون تقریم را رو سنتان چون علن نمیدونن سنتان چه وقت وقتی بوده نه بوده که اینو نشون نمیشه در 4 سال دیگه خبر بدن چاپ نبوده تقویمم رو کسی نشون نمیدونه امسال کجاست در نتیجه می‌ذاشتن هر 120 سال یه بار یک ماه رو کادیسه می‌کردن بعضی کی دو سال پیشم اعلام می‌کردن که ایو حناس مردم خبر داشته باشین تو دهات تو چات بدونین که سال بعد که اومد ماه ها که تموم شد یه ماه ها دیگه از اثر می‌گیریم تا این برگرده سجاش برای که بتونیم به همه مردم خبر بدن دیگه نمی‌شد که از چهار سال یه دخیل گنی روز کنم کسی حسابه سال و ماه و روزو نداشتن زواد نداشتن از خبر نشتن هر صد و بیس سال قرار ده که کبیسه می‌شد بعد اگر همون وقت یه جنگی می‌شد و شلوق می‌شد و اش نمیشد دیگه، بعد نمیشه سال بعد سال بعد سال بعد, بعد که نمیشه این کار بکنه، میمونه در دوره ساسانی، دو سه دفعه نتونستن کبیسه کنن؟ نه، <تصفيق> سال کبیسی نکردیم سمارفت بود سمارفت چی؟ توی این چیز، وقت آزرمه توی بیسرامی، میمیسه کجا آنگست گشت روزگاران، در ماه بود این اوبه ها و حالا، زردشتی یه نوروز سنتی میگیرن همون در آذر ماه ولی عقلشون میرسه که حالا نوروز نیست کج در روزه گارشه منتها چون خیلی اقلیت کوچیکی هستن تمام مراسم بینشون رو خیلی قرس میگامن دارن برای که میترسن اگه یک شیعه خود دستکاری بکنن که درست هم است خاطر به صورت غیر منتهیام دستکاریش اصلا بهین بره اینه که یه نوروز سنتی میگامن دارن یه هم با ایرانی نورقه حقیقی رو میگیرن الان و این به این علته حالا سی ست شهر سود میگرفتن این تحقیمی که ما حالا داریم گفتن که خیام ولی معلومیست خیام که کمیسیون باشه در دوره ملک شای سلجوهی یک کمیسیون تشکیل شد از چند تا منجم درجه یک اول مزفر اسفزاری میمون ابن نجیب واسطی احیانا خیام و اینا آمدن نشستن و حساب کردن و سال آوردن سر جاش در چیر ماه مثلا به حساب مثلا چیر ماه بود ولی در حقیقت اول فروری بعد ماه این گرفتاری موجب میشد که مثلا گفت بودن که مثلا مالیات بیان ماه مهر جمپانی جنسی بودی که مردم که هم دست بیارن تقمیم مهمانشون بید ولی ماه اردیویش شد مثلا اول اردیویش نمیشد که اینی که درست میکرد یه دفعه اون سال دو تا نوروز درست کردن از سال نمیر یک کتاب از اون 20 مقاله تغذی یه مقالهش مفصلا در همین باب سالد اصلاح این تاریخ که اسمشو گذاشتن تقویم جلالی به دلیل اینکه لقب ملک های سلجوقی جلال الدین گذاشتن تقویم جلالی و قرار شد که هر چهار سال یه بار کبیسه کنند اون تا این دقیقه چند دقیقه دراستن 3 سال دیگه خب چند دقیقه یک سال بسال سال فرضی میاد ولی ست سال که می هم بود که این رفتاری اینکه گفتن که چهار سال، چهار بار رو هر چهار سال یه بار بکنن دفعه پنجم که شد کویسه رو بعد از پنج سال انجام بده که اون خوردن برای طبیل جلالی رو که حساب کردن 1000 سال بیش یا شاید بیش از هزار سال بیش دقیق ترین طبیل نیست که تا الان در دنیا قدیم کنیست بودن بسازن و این یعنی تقویم میلادی که الان هست خیلی بعد از تقویم جلالی یعنی این حساب از 900 کردن که از زها اول اصلا اصلا معنی معلوم نیست باشه میلاد فعلی مسیح میلاد عیادت مهر صور قد انشالله یعنی یاد داشت و حالا اون داستانه که وقت نداریم بگیم با صورت مطلب اینه و این به این صورت بوده ماها همه روز داشته روزاشم داشت معقم بوده، تو همه فرنگوها فرنگ هم هر شب رنگ موئین باشه اور بهش روز رام روز مهر روز تیر روز بهمن روز مثلا 22ام هر ماه میشه بهمن روز وا 12 از این اسما اسم ماه ها بوده یعنی هم فاوا از این اوردی به بعد روزی که اسم روز و اسم ماه یکی میشد اون روز جشن می دید. تیر روز از تیر ماه میشد جشن تیرگان مهر روز از مهر ماه شده جشن مهرگان که 16ام و در بهمن 22ام بهمن جشن میگیرن که اسمش باید بشه بهمنگان ولی به اصطلاحشون در عربی نه بهش میگن بهمنجنه بهمنجنه همون بهمنگانه چیز میگه که امن چندی درخت بهمنگی رو از نو تازه کن بهمنجنه ای درخت موز با عطر عز و بیدایی تنه اون موز ارمزد و بهمن و بهمنجنه فرخ بود فرخ هست با ارمزد و بهمن و بهمنجنه مال منوچهری ایست این یه مطلب خیلی مهم نشون میده نشون میده که تا وسط قرر پنجم چون سرطا محمود در سال 421 31 میمیره منوچهری بعد سرطا محمود هم زنده بوده مسعود در سال 400-32 گشته میشه دوره مسعود مثلا بوده دوره محمود هم بوده وقتی اینا رو میگه نشونه اینه که اینا هنوز در اون روزگاه در وسط قرن پنجم اجریز زنده بوده این رسمها رو میگرفتن صدر رو میگرفتن به یقی مفصل بر دوره محمود مسعود بر جشن صدر رو حرف میزنیم بنابارین اینا خیلی بعد از اسلام هنوز وجود داشته فکر نکنیم که مثلا دوره ساسانی بود و بعد تم تموشیم خیلی ها باز هی حرف می درس می دیگه. هله یه چیزی که ندارید چیز نکنید خب بگو من خب بکن تو یک بحرزان دارم هفته تو یک بحرزان شهر خوردم بدید حالا میخواست؟ yes. فارسی بکنم چونی هم فارسی آسومی ما اینجا درس میدین بعد توی یک بخت شهر خنران بدید به ایمان و گاخ سیاهوش رسید به کاخ فریگید به اینها دروید چونین شاد و پیروز و دیتی نورد حضیره شده از دختر شهریاد به فرسید و دینار کردش نسال چه بر تخت بینچست و آنجایید پرستنده بسیار سیار بر بران نیز چندی ستایش گرفت جهان آفرین را نیایش گرفت گوزن پس دخوردن گرفتن کاد می و خان و رامشگر و می گتا به بودن یک هفته با می به دست یعنی خرم و شاید گاه مست و هشتم رهاوت رهاوت می شاوریم رهاوت یعنی سوقاتی، هر مقام همه هزیه های چنان چون سزی از گوخر دینار و از حاج گوخرنگار زدیبا و اصفان به زین پلنگ به و جنای خرنگ فرگیز را افسر و بروش همان یاره و توق بوخنگار به دایو بی آمد به همه رای زد شاد با انجمن چون آمد به شادی ایوان خیش به شد در شبستان خیش به گلشرف و آنکه خوردم بهش ندید و نداند کرد وانچه تو چو خوشید بلکاق فرگخت رو نشیند دا این و با فرگهوش درامش به کلیمان، لختی زمین پرو شاستان سیابوش بدون پلشهر زنش بود، آه زن پیران بوده میره اول تعریف شد زنش می‌کنم تو برو بگیم این چه خورد می‌شونم باید خویاوند آن شهر می‌کن کرد تو ببتی تو اون زنده‌ی خواهر است مزان جایه نزدفت را سیاه پمی‌رفت بستان کشکی برا بیا آمد به بفتان کجا کرده بود همان نیز که از کشور آورده بود مزانجا سراسر همه یاد کردن شدید به کار سیاوش توسید شاه بزن شهر و آن کشور و جاگاه بدو گروه پیران که خوردن بهشت کسی تو ببینند دودی بهش همانا ندارد ندارند از آن شهر باید نه از آن مستر سرفراز یکی شهر دیدم که در زمین نبیند بگر کسی ایزا میچین دوست دوست باق و میدان و آب روان برا میخ گفتی خرد با روان تو کار خیلی دیگه دامد دوم تو گنج بخاطر بیمیان استود یه لک کرد باید بگی که یه لک تراطون نباشد بگی که یه لک کردند نیروها کردند بعد یه لک برد که کرد بعد یه تی یه لک نباشد بگی که یه لک نباشد به دان زیب و آین که داماغ سوز به خوبی به کامی سل شار سوز بلیگر که تو کشور از جنگ و جوش برای از روزشون این خوش آمد به خوش بمانات بر ما او چون این جا بدان دل خوشمندان و رام گردان صرف بزرطان این چیزی نشد که همش گوشن بود تعریف شهر سیاه خوش بود تیران میاد از بس امپرست شده بود به قول شما ها. اول با زنش تعریف می کنه خیلی باید هم میره پیش هفراسیاب میگه آب این دنیا خوب شد و همه امن و امان شد و راحت شد و چه شد و چه شد و یکی آسود هست و ببینیم چه کرده این جوان چی آره دیگه، آره دیگه آره دیگه, دیگه، آره دیگه. بعد، این توصیف ها این حرف ها مایه حسد گرسی این نمیده رفت. که وقتی من اینجا از یکی تعریف می‌کنم چه مثلا این آرش همجینه همونه اونجوری که نفر فرونه که این چرا که چه معنا نداره. اونو دیگه میگه اینجا ما. در حالی که این رابطه نداره وقتی بنده بگم آرش، معنیش این نیست که واقعا دیگه بعدن. هنوز ما ترنس می ما آدم خوبیه، ما شترتن که نه دادم بعدی باشیم. ما شترتن ممکن آدم خوب باشه، ممکن آدم بعدی باشه. هیچ ربطی به این که ما آدم خوبیه. نداره ولی آدمی که در درمون خودش ناراحته و گرفتاری داره نمیتونه بشنبه کسی رو بگنجه چون خودش, خودش میدونه که بده اینکه این که داره میده این خوب چیزی از من نگفت حتما میدونه و بعد میاد شروع میکنه به چیز کردن که اون طرف اینه نه رسه و همین ترتیب میشه این داره. این مسائل پیرام میگه بخون. خب. است. یعنی یعنی استقبال کرد زیبی زیب, بدان زیب و <تصال LA> <م shark> اون من من. اون به گفتاری شالچه که اشیا، اشوخه کویمانه شومات بر اومد. اشوخه بر اومنده شومات به بار. و این داستان ها بگو نه هفته همه بال فودت نهو. به دوو رو تا سیو بخشه ببین تا چه جایه. برگرد. یالو سخنگرد. یعنی گرد یعنی دورشو بگردا. برگرد معنی بازگرد نیست. برگرد یعنی بگرد، گرد یعنی تمامو. باید جایه زمین دل به سری همین زمین دل از ایران نگیرد همین کرد تخت و کلا، و کلا، تو بودرز و بحران و خاوزشا، بدان پر رمی برد یکی خوارستان همین بوم و برس و فریدیس را کاف های بلند فراورد و میداردش ارجمن میگه الحمدالله که فیلن سیاوش دل را از توران کنده و یادی کسی را نمیاره و کسی را بیان میو نخورمان این آنجاست و دائم تو پیچه اینه که کلکی را را میسه فریدیس چربی فراوان به اینیش به چشم بزرگی نگاه کن به تو نخچی رو میباشد و دشت و تو نشینت به پیش از ایران گروه بدان, بدان گفت باری نیاید به دست تو خوردی به شادی دواید نشد یکی که یا رای به یار مرد رو از گلد تازه و کمال. همان تو و هم تخت و نبای چین همان یاره و گلد و, تیخ و نگین زی ها و از رنگ و رنگ ببین تازه گنج از چه آید به چین را هدیه بر همچنین و رو بازمانی پر از برو با بازمانی پر از, آفرین. برو. برو با زمانی از آفرین. اگر آب دندان آب دندان اگر آب دندان, دندان باقت میزوان بدان شهر خورم تو هفته من بقی آب دندان من الان یادم نیست یا معنی ترسو یا به معنی آدم آسونگی رو مهربانی نیست این توی فرهنگ نگاه کنیم الان آبدندان ترکیبه و معنی محسوس داره که باید این کنم که دیگه اینجا، اینه مطلبی بود که میخواستم بگم چربی هم که گفتیم بارها که چربی بگوینی من حرف خوب بزنم و مهربونی و یکی ها، یکی حدیارای بسیار مر مر همون کلمه است که در آمار هم وجوده آمار به معنی رقم دیگه سپاه بی مرد یعنی سپاه بی اندازه بی شمار پس بسیار مر یعنی بسیار زیاد رقمش درست. شکره هدیه ها را بسیار مرد دوباره چی میکنه دوباره این آه... چیزاره میگه گستردنی بیا رو بو رنگ خوب بود خدرود یعنی بدرود آره دیگه بدرود هم بینیه همون ها یعنی وقتی سویشترمال وقتی وقتی که نیبینن هم بگه خب ارض کنم که من از که میرسه، افراس یا میگه بعد پروپیست داشته همونجا که میرسه درشان باید داشته و از زندگی او مراحت میشه. نمیرسیم دیگه. زندگی تهمیده باشه. اینو بخونیم خود میگه حساس در اینجا هاش اینکه میمونه، ما حالا میمونه زور بزنیم. چرا خوندیم مگر؟ چند بودیم؟ ها؟ 1600 داره. الان این 1750. 150 بکنی. دیرم 1750 رو به گمبا خونیم باشه. مثلا تا 1900. این 2500 دید. و یک خودکون بخونیم. و از 2500. 2524. خودکون بخونیدش برای اینکه تمام قسمت بسیار حساسش، همون جاییست که بیده خرید این مسائل باعث رو باز رفتن این اینجا علاقی گرفتاری یه میگم من تو جلسه هست یا نه؟ آره جال دیگه که هست نشانده هست بعد به مطلبی باید من بگم دقیه بعد که این طرز کلک انداختن گرسید هست و اینکه نه بود که نمشته این باید درست کنه باید این واضحی رو درست کنه هم این طرف هم اون طرف اینو تو روح هم با داره بابا زخراین این فتنه این بسیار بسیار یعنی صد در صد شبیه به یکی از باب هایی قیده دیم تا با او بابش دیروگاه، باب اولیی قیده دیم باب الاسدی هسته او متصفلی قیده، چون مشکله شاگذاری یا نمیخونن، یا اگه بخونن، یه یاد گرفتن لغتاشو هاشو اینام و مطلب کتاب رو نمیمونند با ای که از که فکر کردم با خودم این اینکه اگه وقتی عموی باشه بتونم یه نگارشی از کلیله با یه هنشایی بینیسم که همه مطالبش باشه و به زخون همروز باشه که شاگرد یا کاننده بتونه راحت بخونه مطالبشه استفاده این روشی این تریکی به قول شما کلکی که گرسی و از به کار میبره درست همون کلکی است که در باب شیروگاب شغالی به نام دیمنه به کار میبره و میون شیروگاب که در نهایت شابتشون در نهایت برویده به هم و حالا بعد روزیت رو زیاد ناچارم دفعه بعد بگم و نتیجه این است که بازم یه مداری کمتر میتونیم تونیم دخونیم. اینه که شما خودتون، اینو مطالعه ک که ما سریع قرصیم، دیگه چیزاش، لغت رو ببینید بیشتر، ایتنی، چکم و من این مدرد تیل درمه براتون بگم که روشن بشه دیگه یه ادهی هم از این شکنی تولید نخوردن نفردن پاشو بارد بگیر بگیرد که نفرکم پاردوید که هم بخاردوید اشکال